السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله الحمد لله الذي انزل لنا خير الكتب وارسل الينا سيد ولد ادم خاتم الانبياء والمرسلين وجعلنا رحم المعذفين وأرشدنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وسنونا المسلمين من قبل في هذا وجعل الإسلام أغمل الأديان وهتم غاب قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الإسلام ومن يقت غير الاسلام دينا فلن ينجو من العالمين في الاخره من الخاسرين الله يصلي وسلم ويبارك وعنم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الظاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى أسحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أزيزان المحترم وسبران المرامين تفارش می کنم نفس خود و حامیه شما عزیزان را به تقوی خالص و تقوی کامل و حق ته خود ترسی سفارش می کنم نفس خود و همه شما عزیزان را behamun cheez ki khuda war de mutaal bandagao may khud shoo darja bijaye kalam khud se تقوی حقیقی رو در زندگیتون، در عمالتون، در کردار، گفتار و رفتارتون بیشه بکنید و در حالتی از دنیا موت شما، فرا فرابرسک شما کامل ورد اسلام شدهید ادخلوا فی السلم کافه بایدن یک مسلمان دروست و یک مسلمان کامل بشیم یک مسلمانی بشیم که خدا اون مسلمانی رو از ما خبول می و از ما طلب می و محمد رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در رأس امت به اون اسلام و به اون مسلمانی پایبند بوده و خدقای راشدی امیدین به اون اسلام تمسخ جوستن اون چنان مسلمان باید بشیم مسلمانی بشیم که اون اسلام در گفتار ما نمایان بشه در اعتقادات ما اون اسلام مشاهده بشه در کردار ما Dair kindar ma, dair muamirat ma, dair muachirat ma, wa dair tamame, dianneb zindagi ma. Dair surat u'r farameen islam, dianneb amwel, uchandeb chan. Inna salati, wa nusufi, wa mahyyaa, wa mamati, lillahi rahb alaadmin, la sharika dakh, مسلمین زندگی ما موت ما عبادت ما معاملی ما معاشرت و اقتصاد ما برفرد با هم نوع انسان برفرد با مسلمان برفرد با غیر مسلمان و هر حرکت از ما بر از اسلام باشه و تبط دستور اسلام باشه اگر امروز ما این همه مشکلات رو در جامعات اسلامی و در کشورهای اسلامی مشاهده میکنیم علت اصلی و ریشه اصلی عزیزان من این هست که ما اون طوری که خدا گفته اسلام رو انتخاب نکردیم این کوری که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم به ما امر کرده ما اون چنان پایبند اسلام نیستیم امروز بسی از افرادی هستن که فقط میدونن که اسم ما مسلمان هست و بس اگر از اون بخوای که اسلامو برای شما تعریف بکنه تعریف اسلامو نمیدونه اگر ازش بپرسی که اسلام دارای چند رکن اساسی و اصلی است نمیتونه ارکان اصلی اسلام رو بشماره اگر ازش بپرسی که ارکان ایمان چی هستن و ایمان از چی چیزهای اصلی تشکیل شده نمیتونه جواب صحیحی رو بما بده و اون موارد اصلی و مهمی که اسلام بر اونها بنا میشه اونها رو نمیدونه عزیزان من و اسمش مسلمان هست فامیلش محمدی و مسلمان زاده و موحد هست اما از سوحید حقیقی خبر نداره فامیلش محمدی هست از شریعت محمد صلی اللہ علیه وسلم اطلاعات کافی نداره من ما امروز با این چنین حالتی جهان اسلام مواجه است و گرفتار است چرا همه تفسیر و به گردن دشمنان اسلام بیندازیم چرا یک طرف قضاوت بکنیم و بگیم که هرچی جهان اسلام امروز مشکلات داره در اثر برنامه های کفر هست این قضاوتی یک طرفه هست این یک جانب قضیه هست عزیزان من جانب دوم قضیه برمیگرده به خود ما مسلمین ما مسلمین امروز اون چنان مسلمانی نیستیم که خدا و رسول او از ما طلب کرده به برمایشات گوهربار رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ وسلم و به طرف آیات کتاب خدا این دو منبع و مسدر اسیل اسلامی رو به عنوان عزیزان من قوانین اسیل اسلامی بشناسیم کتاب خدا رو درست یاد بگیریم مفاهمش دروس بفهمیم و بعد از اون درست بر اون مفاهم عمل بکنیم امروز بسی از افراد در جوام اسلامی هستن که کتاب خدا این قانون جاویدانی آسمانی رو که برای نجات بشریت نازل شده این کتاب رو فقط محض یک کتاب تبرکی میدونن بالای سر مریضشون اون زمانی که شدت تب بر مریضش غالب میشه قرآن در یک کارچه خوب و تمیز میبیجونن و در کنار سر مریض قرار میدن تا جنها از اون مریض فاصله و بسی از انسانهای بظاهر مسلمان این کتاب خدا رو وسیلی برای ارتزاق و پرکردن شکمتهایشون قرار دادن عزیزان من اون چیزی که ما انزل الله بها من سلطان هیچ دلیلی بر این عمل خودشون از آیات خدا و از حج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ندارا بسیاری از مسلمین امروز این فرمایشات و احادیث و هربار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و که محدثین تمام عمر خودشون و صرف و لیه و مشخص کردن صحیح از سقیلشون کردن عزیزان من بسیاری از مسلمانان این احادیث را صرفاً به عنوان مجموعه ای از سخنان متبرک و به عنوان تبرک قراعت می کنند و بس اما دین و از کجا یاد بگیرند؟ مجموعی از کتابهای فلسفی یونان و هندوسه قدیم که به وسیله ی بعضی از فلسفه‌گرایان اسلامی ترجمه و وارد جهان اسلام شدند و اونها رو با مجموعی از معتقدات اسلامی مختلف کردند دینشون رو میخوان از اون کتابهای فلسفی یونان مسیحیت هندو و او گوشه با مجموعه‌ای از اعتقادات اسلامی از ازونه‌ها یاد بگیرند کتاب خدا به عنوان یک کتاب متبرک برای روندن جنه در جامعه اسلامی شناخته شده احادیث و هر بار رسول الله که شرح کتاب خدا هستند به عنوان تبرک و کس دردن برکت در میان مسلمان من شناخته شدند و دین از کجا یاد گرفته شده از عزیزان من قسمت بزرگ مشکل برمیگرده به طرف خود مسلمین دشمن دشمن خارجی دشمنیش مشخص هست دشمن خارجی رو همه می شناسند که این دشمن خارجی است این امریکاست این کفه هست این یهود و نصارا هستند اینا ها میخوند تیش اسلام بزنند این برای هر مسلمان هرچند آمی باشه هر چند بی سواد و کم سواد باشه دشمنی اونها برای مسلمین مشخص است. اما این قضیه برای بسیاری از مسلمین مبهم هست عزیزان من نامشخص هست كبسي أز مشكلات ما در أسر أعمال ما بما رسيده إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن وعلي خداس ومن أستق من الله قيله و من اصدقو من الله حدیث و من هرگز وعده خدا خلف نخواهد شده هرگز اون وعدهی که خداوند متعال به بندگان خودش داده و اعلام کرده که من عزت و شرط و بزرگی و نصیب شما می کنم اما به یک شرط من این سرنویشتی رو که شما دارید این های، گرفتاری های زیاد این مشکلات زیاد این سلدی که بر جامعه اسلامی است من اینو تدیر میدم اما به یک ش و اون این هست که اول شما نفسه های اعمال خودتون و، کرددار خودتونو و در رأس اعتقادات خودتونو اصلاح بکنید از چی؟ منبعی و از سیمس دری از کتاب خدا و از سنت صحیح رسول الله صلی اللہ علیه و سلم طبق فهم گزشتگان صالح این امت صحابه رسول الله ایمه دین تابین و اتباع تابین اون سکرنی و اون انسان های بسیار شریف سکرنی که جهان اسلام تاب قیامت به وجود اون انسان ها مفتخر هست امروز دیده میشه که عالم نماهایی با برداشته های سوی از بعضی از احادیث رسول الله صلی اللہ علیه و سلم اون برداشتی که صلف صالح از احادیث کرده اون برداشت رد میکنن میگن برداشت ما بعد از 1400 سال از حدیث این هست و اون برداشتی که این میداشتند و تابعین داشتن و اتباع تابعین داشتن اون هیچی ارزش از, از برداشت ماست ابتدای حرکت کردن به انحراف عزیزان من در عصر حاضر از اینجا شروع شده علما رو دو گروه کردن علمای متقدمین و علمای متأخرین چهار صده اولو، یعنی صده رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ وسلم و صحابه رو، صده بعد از اون تابعین و اتباع تابعین و صده چهاران رو، این رو گفتن این علمای متقدمین هستند، و بعد از اون علمای معاصر رو، یک سال پیش سال پیش از نه به بعد این رو گفتن علمای متعفیرین، وقتی که در اعتقادات بحث میشه اینا چی میگن؟ میگن که درست اعتقادات متقدمین سالم تر هست اما اعتقادات متاخیرین علم تر هست این یک شعار عزیزان من خلاف اون معتقدات احل سنت واقعی است اهل سنت واقعی عزیزان من یکی از شعارهاش این هست که اسلام ما از روی فهم سلف صالح باید بفهمیم تابعین کرام علمای تبع تابعین و علمای قرن اول از حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم چه فهمی داشتن و یک عالمی بعد از هزار سال یک فهم دیگری داشته یکی از علامات اهل سنت واقعی این که فهم اون عالم بزرگوار س صده افر و دوپن و, و بر فهم این آلمه بعد از هزار سال ترجیح میده و مقدم میدونه امروز حسن کموبی شما در جریان هستی علمایی به عنوان مفتی بزرگ در یک کشور اسلامی و شاید رئیس یک دانشگاه اسلامی گوهند اینجوری این فتوای میده که حجاب اسلامی برای زمان یک مساله بره ای یک مدت زمانی مولدیات ایجاب کرده کہ حجاب باشه اما الان در کشورهای هم چون نمیدونم فرانسه هم چون امریکا هم چون بریتانیا که اونجا اگر یک زن مسلمان بخواد حجابش رو حفظ بکنه نمیتونه اونجا بقایش رو ادامه بده نمیتونه تحصیلاتش رو ادامه بده نمیتونه اون کارش ادامه بده بنابراین میتونه اون حجابش رو بر داره عزیزان من این کونی علما ابتدای حرکت به طرف انحراف از اینجا شروع شده ما باید سرفی داشته باشیم در این اولا این صراحتا نخض آیات خداست مخالف دستور سریح کلام خداست مخالف سریح رسول الله صلی الله علیه وسلم و هر معایشات به هر خدا صلی اللہ علیه وسلم هست کدوم یکی از علمای سقرن اول و دوم و سوم این چنین برداشتی از احادیث کردن که اگر در یک موقعیت زمانی این چنین حالتی پیش اومد که حجاب مشکل آفرین شد برای زن نمیتونست ادامه تفسیرش رو بده نمیتونست ادامه بقاشو در اون کشور بده میتونه کشبیه حجاب کنه مثل کفار و از اینچونین مثالها به وسیله بعضی از علمایی که سوی فهم پیدا کردن عزیزان من در آیات خدا و در احادیث رسول الله زیاد هستن و مثالها هم زیاد هستند. نجات انسان و نجات یک مسلمان عزیزان من در گروه عمل کردن به آیات کلام خدا و احادیث بحربار رسول الله صلی الله علیه و سلم برپا صرف صالح این امت و این فقه و دین خسعهی ظالمان هرگاه یک مسلمانی در هر جا و هر کجایی از این سرزمین پهنوار و کل گیتی یک آیه‌ای رو دی yek hadith az ahadees rasulullah sallallahu alaihi wasallam deed wa deed ke qabl az man 1000 saal peesh 1200 saal peesh basi az بسی از صحابه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم و عموم و, و خواس مسلمین بر این عمل کردن اگر امروز این بفاترین که اون عمل کردن به اون حدیث با ارخ و تغالید منطقه سازگاری نداره بر اون عمل نمی کنه عزیزان من این شخص متعصر شده بی این فکر متعخیری این فکر فکر صلف صالح ما نیست ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فقیه بزرگار صحابی می که حق و جماعت چیه؟ کسرتون نگفتن عزیزان من جماعت شاید در ذهنتون باشه من یک جمعی رو مختص کردم برای شرح لفظ الجماعت که چرا به اهل سنت میگن اهل سنت و جماعت بعضی ها دانسته یا نادانسته در بعضی از کتابهایشون نوشتن که این لفظ جماعت و امیر المومنین رضی الله تعالی عنه وارده لفظ اهل سنت کرده اما صحیح این هست که نه رسول الله صلى الله عليه وسلم این فرق ناجير و كتاب قيام قيامت متمسك بكتاب خدا و سنة الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي از اسمهايشو الجماعة بيان کرده اما الجماعة يعني چه آیا الجماعة یا جماعت بمعنی کسرت به معنی زیاد بودن افراد، بیان به معنی سیاهی لشکر و به معنی اینکه ما افتخار بکنیم که این قدر ما طرفدار داریم این گفته ما، این فکر ما، این مذهب ما، این منحج ما یا نه برمیگردیم بر اصول اهل سنت و جماعت که سلف صالح ما از این لفظ جماعت چی فهمیدن؟ آیا کسرت فهمیدن یا یه چیز دیگری رو فهمیدن؟ اینجاست؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من فرماية الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك جماعتني لحاك اگر یک نفر هم باشی برحق باشی آمن به کتاب خدا و سنت صحیح رسول الله باشی و در این عمل کردن از ملامت کردن هیچ ملامت کنندهی فروانه نداشته باشی تو یک نفر هم جماعت گفته میشی عزیزان من جماعت کسرتو در حدیث فیانبر کسرتو جماعت نمیگن فیانبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة ترقد الحديث رسول الله بفرما يد وهي الجماعة قروهي كيف از این گروه های زیاد کلامی و اعتمادی که همه سنگ بسینه و دست بسینه می که ما حقیم و دیگران غیر حق هر یکی میگه گه که ما درستیم و دیگران ندرست ما راجع هستیم و دیگران مرجوح کل حزبم بما لديهم فرحون. اما حقیقت پیامبر خدا صلی الله علیه و وسلم در در محدوده یک شعار قرار نداده در محدوده عمل قرار داده هر کسی در اون محدوده عمل عمل میکنه عزیزان من اون حق است به هر اسمی باشه به هر قومی باشه و کسانی که در اون محدوده عمل نکنند اونها عزیزان من ثمره اون ویدی میشن که رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیان کرده هفتاد و سفرقه میشه این امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میفرماید یکی از این هفتاد و سفرقه سزاوار بهش هست و هفتاد و دو دیگر سزاوار جهنم هستند و علمای عقیده اومدن این هفتاد و سه فرقه رو مشخص کردن گفتن فلان مذهب اینقدر فرقه کلامی و اعتقادی داره فلان مذهب اینقدر فرقه کلامی و اعتقادی داره و یکی از اون کتاب هایی که میتونید جمعون مراجعه بکنید در این تقسیمات هفتاد و سه فرقه بنیت و طالبینه. عالم بزرگ عبدالقادر جیرانی اون عالم بزرگواری که امروز مقام اون عالم بسیاری از تصوف از اون مقام اصلیشون بالاتر بردن و به درجه پیامبری و خدایی رسوندن، تیکی از علمای حقانی و ربانی خدا بوده هیچ ادعایی نداشته این ادعاهایی که امروز فرقه های از صوفیه وقتی که مشکلی بشون در هر مرجای میرسه میگه که یا عبدالقادر جیرانی کمار. کمک تره عزیزان من از دیدگاه اهل سنت و جماعت واقعی از دیدگاه عبد عبدالخادر جیلانی از دیدگاه امام ابو حنیفه از دیدگاه امام شافی و مالک و احمد از دیدگاه صحابه رسول الله از دیدگاه امام بخاری و مسلم و غیره کمک تره کردن فقط و فقط از خدا جایز هست و بست برگردین به طرف کتابهای عسیل در کویۃ الطالبین این امام بزرگوار عبدالقادر دیرانی رحمۃ اللہ و این 70 و سی رو تفسیل بندی کرده گفته چند تا اینجا چند تا چند تا یک فرقه و ام اهل سنت و جماعت است اون همون فرقه است که رسول الله صلی الله علیه و وسلم به اسم جماعت یاد به این توصیف بیان کردن که ما انا علیه اليوم و اصحابی هر کسی که تا به قیام قیامت بر راهی که من منو انتخاب کردم و برون حرکت کردم و صحابه من برون با من حرکت کردم تا به قیام قیامت هر مسلمانی بر روی این راه حرکت کنه عزیزان من جز فرق ناجیه هست جز گروه رستگار هست جز بهشتیان هست و این عزیزان من این انتخاب کردن این اختیار کردن گاهن ممکنه عزیزان من ملامت ملامت کنندگان به طرف شخص راهی بشه در اون اجتماعاتی که بسی از اون چیزهایی که از پیانبر ثابت هست اما در اون اجتماع از بین رفتند و بدعت ها بجای سنت ها شکل سنت گرفتن عزیزان من زنده کردن یک سنت صحیح عزیزان من خیلی سخت است و اون مسلمان این توقع نداشه باشه در منطقه این که سنت صحیح از بین رفته و یک بدعت شکل سنت گرفته و در میان مردم رواج پیدا کرده و اون بخواد سنت صحی رو جای گذونه اون بدعت بکنه مردم بیان دست بوسه اون بشن و از اون تشکر بکنن خیر عزیزان من صرف صالح ما برای ما بهترین اصوه و قدوه هستن ازیزان من کدوم یکی از غلمای حقانی و ربانی که شما بگید من برای شما در تاریخ ثابت می کنم که به خاطر اعلیه کلمت الله و بخاطر دعوتها چه شکنجه هایی رو و چه اذیت و آزاره هایی رو از طرف حکام یا از طرف افراد عالم نما متحمل شده. امام ابو حنیف رحمت الله تبارک و تعالی, تعالی وارد زندان شدن عزیزان من به خاطر چی؟ خاطر کلمه حق امام احمد ابن حنبل بخاطر این که می گفتن قرآن کریم مخلوق نیست یکی از صفات پروردگار هست عزیزان من مدت طولانی در گوشه ای از زندان خابیدن خدومی که از علمای ربدانی که شکنجه ها متحمل نکرد Rheir alemmig yryli её bach,ростad ac ystyrii, dradell Yitzan Eman. Dlai yw eich tyni e�diol. Ten yw feud ôl deberion incident که میبینه بسی از ها وارونه شدن و شکل سنت به خود گرفتن و در میان مردم رواج پیدا کردند. یک اولی راه اینه که ساکت بشه بی توجه بشه. گویا بگه که من اصلا اطلاع و خبری از این مسائل ندارم که در این حالت عزیزان من نزد پروردگارش ملامت میشه. روز قیامت باید یک قدم نمیتونه جرا بره تا اول خدا مند میگیره که ای انسان من به تو علم آموخدم و من به تو حقیقت نشون دادم چرا مردم متوجه حقیقت نکردی؟ اونجا جواب دادم عزیزان من سخت هست این یکی در این حالت مردم اون مرامت نمی کنه ساکت هست هرچی مردم هم بیدد انجام میدن دن شکل سنت همون بیدد گرفته اما اون ساکت هست هیچ مرامتی از جهت مردم نمیشه. شه حالت دوبوم عزیزان من این هست که ما با مردم هم صدا بشه و این از اون اولی بدتر اما حالت ثبومی که علمای رفضانی همچون امام ابو حنیفه از ایمه فقر امام مالک، امام شافئی، امام احمد، امام اوزائی، امام عزیزان من شعبی، امام صوفيان الزوری، صوفيان ابن عوینه، فخاری و مسلم. Yiek دنیا عالم ربانی در سده اول. Awn زمانی که اون تشاره های شدید بنی امیه، بعضی از حکام بنی امیه، وبعد از اون، بعضی از حکام بنی عباس. بر جهان اسلام بود عزیزان من اینها مثل کوهی آهنین در مقابل بدعت ایسادن اون زمانی که یکی از حکام حکام بنی اومی اومد نماز اول تغییر داد عزیزان من بعضی از صحابه بزرگار که زنده بودن مثل کوه آهنین مقاومت کردن در مقابل اونها و بعضی از ایمه و بخاطر همین مقاومت ها عزیزان من مورد ملامت اوامه اون زمان قرار گرفتن مورد شکنجه حکومت های اون زمان قرار گرفتن اما امروز تاریخ حقیقت به ما نشون میده و هر مسلمانی که اونجان فدایی های اونا رو میشناه میگه رحمت الله تعالی علیه مجمعین هیچ حق گویی در طور تاریخ نشده که حق رو در یک جامعه برای باره اول اعلام بکنه و مردم بیان دست بوسش بشن عزیز آنم. نیار کتاب خدا و سنت صحیح رسول الله صلی اللہ علیه و سلم هست عزیزان اینجا یه سوالی رو عزیزان من نایشن وقت نماز هست نماز جمعه انشاءاللہ درونین برگذار میشه با تراجب این اینکه اوزه های من دارن به البر برمیگردن این عزیز نوشته که شیخ عبدالقادر گیرانی مذهب حنفی را ترک و احمد ابن حنبل و از احمد ابن حنبل پیروی کرد عزیزان من اگر ما با تطبع و با در سیره علمای رفتانی بنگریم یه چیزی رو میبینیم که اون باید برای ما عزیزان من الگو و یک دست بزرگی باشه و اون این که عزیزان من هیچیکی از علمای ربانی سلف متمزهب به معنی اینکه که حدیث پیغمبر رو ببینه که با امام اون نیست و هنوز برگفته امام خودش باقی بمانه این چونین عالمی در سلف عزیزان و من شما یک نفر هم نمیتونید بدانون چه عبدالقادر جیرانی باشه چه امام ابو حنیفه، و شافعی و مالک و بعد از اونها پیروانشون باشه عزیزان من تعصب و تقلید کورکورانه عزیزان من بعد از 500 سال وارد جهان اسلام شد و قبل از اون همه علماء دنبال حق بودن عزیزان من و هیچ کسی این ادعا رو نداشت که مذهب من از اول تا صد حقی و مذهب دیگران همه مرجوه اگر کسی این ادعا رو داشته باشه عزیزان من که مذهب شافعی حقی و بقیه همه مرجو هستند پس سهار پیش میاد که اگر مذهب امام شافعی همش راجع بود پس چرا امام احمد ابن حنبل که بعد از شافعی اومد و شاگرد شافعی بود چرا آرای در از آرای شافعی رو انوان کرد اگر اون راجع بود پس چرا این بویا نظریاتش مختلف شد پس چرا دو امام بزرگ و شاگرد معروفه امام ابو حنیف رحمت الله دبارک و تعالی در نصف اکوار استادشون نظریاشون مختلفه این چیزها عزیزان من در میان کسانی هستند که حقایق رو نمیدونند اطلاعات کافی و وافی ندارند تعصب چشم و کوش اوناها رو همه بسته و اینها برایشون مهم هست و ایلی وقتل قادر جیرانی عزیزان من یکی از عیمه بوده دلیلی رو از پیامبر صحیح دیده دنبال اون دلیل رفته برایش این بوده، برایش این مهم بوده که از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم افتدا و بیرایی بکنه همونطوری که نیت سای عمیدین بوده خداوند مطالب به ما توفیق بده که یک مسلمان درست باشیم، مسلمان کاملی باشیم عزیزان من، تقوار رو به عنوان یک عزیزان من، یک مهم و یک اصل اثیل در زندگیمون داشته باشیم خدا ترسی خدا ترسی در گفتار خدا ترسی در حکر کردن بر دیگران در قضاوت کردن بر دیگران در نظر دادن در رابطه با خود و دیگران عزیزان من همون طوری که خداانده مطال عمر می که ای بندگان من حکم بکنید به بي عدالت ولو این بر نفس خودتون باشه بر نفس خودتون هم با عدالت حکم بکنید خدا من ما رو مسلمان کامل خرار بده خیران حقیقی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو خرار بده و بما توفیق بده که ملاک در نظر ما کتاب خدا و سنت رسول الله و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه این کلمه صحیح رو من در گفته هام ذکر می کنم به خاطر اینکه گذشتگان گزشتگان صرف صالح ما این کلمه رو ذکر کردن زیرا بسی از چیزها هستند که به اسم سنت در میان مردم رواج پیدا کردن در حالی که اونها صحیح نیستن لذا باید قید سخت در سنت داده بشه بسی از زناده که اومدن به اسم رسول الله سلام حدیث بیان کردن بسی از افراد جاهل اومدن به خاطر تشویق و ترغیب کردن مردم به اسلام به اسم رسول الله و وسلم احادیث فضیلت بیان کردند اما اونها اعتبار نداره عزیزان من همون حدیثی اعتبار داره که با سند صحیح شفاف و روشن تا قر رسول الله صلی الله علیه و وسلم در bütün کتابهای حدیثی برای امت تا قیام قیامت محفوظ است خداوند متعال گذشتگان ما را مورد عفو و خودش ترار بدهد و قبره های گزشتگان ما رو پر از رحمت و پر از نعمت و برکات و نور بکنه خدا مند متعام به ما بصیرت و آگاهی انایت رو کنه خدا مند متعام جوانان ما رو توفید بده که به طرف یادگیری کلام خدا و سنت الله صلی اللہ غم بر داران چش مبسه و دست بس و گوش بس عزیزان من انسان نمیتونه اسلام یاد بگیره انسان با احساسات نمیتونه برای اسلام مفید باشه عزیزان من بلکه با یادگیری درست با یک فهم صحیح از اسلام اون موقع عزیزان من بزرگترین اون های لامذهبی وقتی که یک جمان ما از روی کتاب خدا و سنت صحیح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاداتشو صحیح یاد گرم اگر اون توفانهای شدید کفر، لا دینی، کومونیسی به طرف اون دوازش بیاد عزیزام من اونو نبیتونه متزلزل بکنه از اقیدش اما اگر کشم و گوش بسته، با احساسات ما بدونیم چه روزی دور و بر کید جمع بشیم و به مسیر بیا انی زانمن این خطرش خیلی زیاد است شما رو در اول انقراب یاد بود حسی زانند. چقدر از جان ما با یک اشاره به طرف کمونیست حرکت کردن. با یک اشاره ما یادمون هست کسایی که سشون به اندازه ما است که اینجا کلاس ها داشتن برنامه ها داشتن آنانی که از مادر و پدر مذهبیصد در صد متولده شده اما ب خاطر این که اعتقاداتشون دوستسییان نگرفه بودندن و اون اسلامشون یک اسلام میراسی بود از ایزان من با یک چراغت سبز از ایزان من فورا در دامونونه ها رفن. ذیر اززیله ها الحمد الله خدامانده متال یه موقعتی روجات کردند که برگشتن به دامن اسلام. و بسیع از اونها فراری و متفرق شدن. اگر خدای نکرده ما هم با احساسات بخواهیم بر اسلام عمل بکنیم. و اسلام ما اسلام احساساتی باشه. نه اسلام عملی و اعتقادی و اسلام حقیقی. عزیزان من این خطر خست. خدا متعال به ما توفیق بده. که اون چو شنیدیم و گفتیم جامعه عمل بکرشانیم. والسلام علیکم و امید حالا.